سلام آقا سلام شما خارجی هستید بله من الجزائری هستم شما ایرانی هستید بله من ایرانی هستم اسم شما چیست اسم من رامین است اسم شما چیست؟ اسم من محمد است